داری اتاق <تصفيق> دریانگری نیوز؟ بپرسی لیس همچین چیزی؟ این اونه که من من برای دیویسیش من برای آموزشمان چند سال بعد سال یک سال آینده سال بعد سال بیست و سال آینده مشاهده شد. بعد سال یک سال آینده مشاهده شد. بعد سال بیست و هفتم یک سال آینده و هفتم یک سال آینده مثلا من هر شب هر روز هر لحظه سعی میکنم اینجا بیایم. من هر شب هر روز هر لحظه سعی میکنم اینجا هر شب هر روز هر لحظه سعی میکنم اینجا بیایم. من هر شب روز رسید به این حدف باید سر گرفتن ک و مدرله ها تا۱هزار افزای شده هستند در یک سال برای رسیدن به این هدفس <تصفيق> برنامه هستی به شهر زیر مید. افزایش ترجم عمومی به میای دهه در سال افزایش تقیقات کامپیوتری افزش صدداد مترجبه بیننی می گردد که با اجرای این برنامه مد 120 میلیون میلید، سود نصیب شرکت گردد و خزینه های این طرح نیز 10 میلیون بیاد 100 میلیون پیش میلی شده است لذا این طرح جمعا 100 میلیون ریال سود خالص نصف شرکت را و سود ناخالص 10 میلیون جمع هزینه 10 میلیون 100 میلیون ریال جمع هزینه ها 100 میلیون رسید. نسبت 14% به आवाज. این کار و این حداکثر که سهم 20% درصد اصل ارزش وجوه دامی در سال و کسب 30% سهم بازار می باشد. برای رسیدن به این هدف پیشنهاد می شود که نیروی پشتانی فنگ درست و و ماشین آرات هم ره درست ها نفته و روش به شرایط و با تحقیل فرضه گرد این صد فرضه شد حالا داره چقدر هزین کنیستی؟ چقدر اون صود هزین خود از مدرک کامل می آقای موسعی با جا موسعی نه مینده حسین رضایی موسعی مرزی نده کازمی بگو آقای کازمی موساد، من رو نبینیم این آن رو فروش شرکت بالا در سال نارده شهار در, سال در با ادافش، تر بازرگیر و دسته به عدد 20% بالاتر میباید آموزش مدیران فروش افزایش شد آفرین؟ هجم انبار نمید رو به نیستی، آموزش چند ساعت؟ با چه هزی هجم انبار چقدر افزایش پیدا کنه؟ با چه هزی تو تیجای بعدی؟ بله، بعدی شوان که، بدون؟ بگیر به من آنم شاید همین پرین این رو با عدد این چقدر حزینه داره؟ از این حزینه های چقدر مهیار سودت بوده چقدر مفاصله ترناوری داشته چقدر مفاصله بروی باشه چقدر خروجی داشته سودت چقدر میشه با عدد باشن خصفیه این رو هم به اینیسی کامل میشه کوراسی مدرده کامل میشه آیا سرکنزا موسعی؟ که آنیم سکی؟ موسع شبید از ایچی دردم بزرگی کریمی، احسان کریمی، من داریم آبای و دارم که پیش بینیمی که سی یا شیش سال انده درآمد داشته باشن از <بزنبوسی> می‌تره، بینیم، از نه داشتم بگم اگر نه، بنیمسته باش. چشم نه همین من... الان باز من؟ باز من؟ باز من؟ باز از این کار که فکر آزا اینجا مدرس <تصفح> بخون مشکلات که هم بتونیم براسش <تصفيق> <تصفيق> شد که گرفتن سه منطقه پر تهرانه آفرین برای این هدفم عدد، با چه هجمی خب <تصفيق> و... برای هدفم میزان طرید و به روزی یه تون و انسانی سه برابر چیز فعلی، نیوی گرفتن با معاملال 500 ملیون تدید تجهیزت فنگی و کارگاه گرفتن سوره حالا اجرایی برمون جمعا حوض در ملیون پول داره و حوض خالصهشم 200 ملیونه شبا؟ خیلی هر حالا کاسبی نوشتی؟ بقیه کتابی نوشتم برمی کرد همیسی که مصرومان خلاصه مدیریتی دیگه داره نه نه اینو خ... هم در اوردی آخرش اوکیه خزیناش در میانگین خزیناش در اوکیه اون خیلی ساده نمیشه ما الان کتاب باشه که این می گه بعدا خلاصش مدیریتی سال توانی که بشه خونه هزینه ها هست، خلاصه مدیریتی با عدد باید کار میکنی. حالا اینا هم شما؟ در ربعین چه جوری میشه؟ موت. آره خوب بود، نه خوب بود. مشکلی شما آره بود؟ خب از سان بیت مدرسه. مثلا شاید خوبن، ناله میکنن باید من کم میشنم و من کم میشیم و دری بیشتر <متحد> نورم یاره. الله عزیز، اما بالاتی است نم خد صختن من کجا است فرشون ناله میکنه که بالاتی است نم صختن. و آخرش من بیشتر میگیره از این من دو. من پیش شما ده میکنه و من یشوم بیست میشه مثلا قرمزه از این نامزد میشه چه میشه. شما بیست شدی. نوانی دادشانی نشم اه. با به تحسیس شرکت بازرگانی ارواند حیط مدیره موسسه تحسیب نمود این محسسه که میگم ما محسس بالدستی ماست که شامل اطلاعاتی شرکت های مختلف هست ما یکی از شرکت های محسسه هستیم که حیط مدیره تحسیب نمود مم. که مم. سرهای موجود در شرکت ارون با هدف تحقق سود 80 درصدی سال 93 در محسس نصبت به سال قبل باید باشه. همین حدث سود با. بله، یعنی امسال سود محسس در 80 درصد شو از شرکت ما میخواهند. حالا دو تا ترهی هم که ما الان ترون داریم توش کار میکنیم و شروع کردیم به همی شکل. یک خرید حدود 600 میلیارد تومان آهنالات با هدف استفاده از بخشی از آنها در کارخانه زوباهن و بخش دیگری از آن برای فروش به دیگر کارخانجات زوباهن میباشد مبلغ 7 میلیارد و 7600 میلیارد دیار خریدمون هستش دردن 10000 میلیارد دیار فروشمون هستش سود پیشبینی برای این پروژه 2400 میلیارد ریال میباشد دوم اجرای بعد هزیناشنرز در جمع آوردن بد. دو اجرای پروژه رفای خدماتی بازارچه مرزی با سرمایه بالفر با ملی... یک هزار میلیارد ریال و اجاره 15 ساله تر و درآمد ناشی از آن به میزان حالا اه... این درآمدش رو به میزان 600 میلیون ریال ماهیانه 18 میلیارد ریال سالیانه و 3.13 سه میلیارد سه ریال در دو پایان دوره 15 ساله که سود پایان دوره اینتر 3139 میلیارد ریال در پایان 15 سال میمونه که سوم سود ناخالص کل حاصل از دو طرح فوق بالغ بر 5639 میلیارد ریال میباشد با توجه به هزینه‌های پیش بینی شده این دو طرح بالغ بر هزار میلیارد ریال پیشبینی می شود که سود خالص هر دو در پایان دوره 4639 میلیارد ریال باشد با تحقق این سود می توان نسبت به احداث کارخانه و ترقی مورد نظر سازمان اقدام نمود. اول شاید یه چی بود؟ در گزارش نه ها ها پیشنهاد داشت. پیشنهاد با جزیات نه شناراتو متوجیهات دیم. دیگه. کار نوشتم تو جزیات خیلی زیور آسیه. برای همین نیاز به یک آره بیاریم. شناختونو رو که این مارکتینگ پلان واسه 15 سال میچینی. بهزمه ما هر این چیزی خیلی چیز نداریم اصلاً نداریم چون شما ببین یک ساله سه ساله من کجوام رفتم بلام و رفتم یه شورت ترم و لانگ ترم از طرف مثلا مکنان. کار بیزنس جوریه مثلا الان یه پروژه شروع کنه چهار سال دیگه تموم میشه همین سالیانه این کار همینا داده مجبور مثلا باختمن 5 ساله بندازه مثلا یه ساختمون الان شما شروع میکنه چهار سال دیگه تموم میشه این مثلا سال من چقدر می‌خونه مجبورین یعنی برنامه بازاری بید پنج ساله بشه چهار ساله بشه بعد نه باید به بکنی خودش بکنی تا اون هدفای کوتاه مدت به اون برنامه برسیم. اصل بزنس شما این که سال کاریتون چی باشه چه باشه سال در چی باشه چه برنامه بعد نویلی باشه کجا می‌دیدی که کار یا ببین اصل به ماسم ماکتبلنگ یه روزه داریم با میشه بله صبح میاییم. میگیم تا غروب پایم کار انجام دیم. بدیم بدیم چون نیم ساعت نوشته میشه تو هشت ساعت اجرا میشه غروب صبح مشخص میشه دقیقا هفته پیشه تهیه داشتم جوری. از این تا اون تا خرید کردیم یه فروش کردیم سودش درجا برکش. یعنی یک ساعته بود اصلا در این سریع مشخص دستی اون میشه اون کاری که ساکن اسمش مارکتینگ برنامه کار بگیرید قایم می کنم از اون. چون بفرمایید واژه‌اش اصلا نه واژه‌اش درست ترجمه شده نه من درست میفهمم. ممکنه دقیقاً این مارکتینگ مارکتینگ آلمانی باشه. شاید بازار‌یابی رو بد ترجم. بازاری ترجمه، مثلا مارکتینگ رو بازاریم ترجمه کردنم، اشتباه من هست. کلمه لغوی، مثلا مارکتینگ شما نام کنید. مارکتینگ داخل مارکتینگ بازارگرمی بازار سازی داریم، بازار‌یابی داریم، بازار سنجی داریم. بعد یه واژه بازار‌یابی رو ترجم کردم مارکتینگ. تمامی عوامل بازار تو این هست مارکتینگ, مارکتینگ هست. بازار شناسی، بازار سنجی، بازاریابی، بازار سازی، بازار‌یابی. همه‌ داخل مارکتینگ گرفت و یه واژه کوچیکش کردم مثلا بازار‌یابی. بفهمم چون این اینا حلش بکنید با یه آقای شیوانی. ایوانیم فرزیاتمون تداد ویب که از مشتریا دریافت میکنیم در حال حاضر تا با عنوان مثال هزار عدده که در سال آینده باید به سه هزار تا برسه برای رسیدن به این هدف باید تبلیغات انجام بشه اموزش جدید صورت بگیره امکانات بیشتر در عددش رو پایین آورده آموزش جدید انجام بشه امکانات بیشتر در اختیار کارمندان قرار بگیره و حقوق و پاداش افزایش پیدا کنه چه امکاناتی حقوق پاداش آموزش‌ها رو حالا چند ساعته با چه ای رو در نظر گرفتم 10 میلیون تومان امکانات بیشتر و هزینه رو هزینه ها رو 30 میلیون تومان در نظر گرفتم حقوق و پاداش 5 میلیون تومان که جمع شده 45 میلیون تومان که انتظار داریم سود اون 65 میلیون تومان باشه که 20 تومنش خاله سمیشه خوبه آخرش باید باید پیشنهادات بیشترش بشرفش هم عدد بیارید هم رو مشخص باید فرق ساده بسرد من میکنم این تجازه بگیرم جلسه چون الان آماده کنید این نشونه یه چیزه. علی مثلا چطور توضیح بدم بلی اینکه عدد و ارقام رو خود ما باعث حساب کنیم فرض فرض پیشنهاد می‌گیریم. فرض بذارید پیشنهاد بدهید. آدرس آمال هیچکی آمال در داری این مدرسه الان من, من به جای میگم چه راست شده حساب نکنید. ولی متوسط که پیشنهاد یه فرضیه بعد نوشته بشه. بعدن ارداشم رو که جابجا کنیم تا آخر جلسه آخر کلاس همه چیزی ببینیم. علی تقارن چیزی تو این طرف این هدف هستش که چون سهم بازار دقیقاً الان نمیدونم با بازار دقیقاً این اسمه ساله، دو این این با این هدف که سهم بازار مثلاً پنی درستگی پوشاک رو تختیر کده که با اشتغال 150 معلوم به صورت مستقیم مثلا صرف به صورت به طورت کار در منزل تا یک سال آینده اجرایی کنه برای به این هدف آن باید مثلا من نویشم مثلا 20 هزار دست نبا سورید بشه باز من عدد ارمان باشم نداره مثلا آقای روید این در میارید بشه <تصفيق> شش به همین جهت و در نظر تمسند سیدار ماجی ماجی درصد ماجی به ماجی ماجی ماجی ماجی ماجی ماجی ماجی ماجی ماجی ماجی ماجی ماجی خب ولی عادی من جوابشو چطی حزینه مخاطب بکنید برای این برنامه راه ترتون بعد با دیتیل میشه بعد این جلسه بعد ان شاءالله خیلی دوستاشم در ی خدمتتون میام بعد هر جلسه بعد بیاید این جلسه همین که خوب بود ولی خب باز آخر حزینه ها خا... سود خالص هم باید درو خوشاخص بشه من خوب به اطلاع شما میدم شما از این جایی خوب مرحله چقدر دروالیه در میاد دقت کنید نت هست نمیدونم خبر ندارم اطلاع ندارم بکنیم فقط فرض بذاریم تامیه پالانومای دنیا داره با فرضی انجام میشه ما اینجا نمیتونیم فرض بکنیم فرض بکنیم کارو خودمون انجام میدیم این قضیه رو خودمون به دست میاریم نه ترسم ندیدین که عدد بدین فرض بذاریم، پیشنهاد بدیم عددتون رو کوچیک انتخاب نکنیم نه انقدر رویایی کنید، عددتون رو کوچیک انتخاب نکنید. اون از بعضی شما خیلی خوشمون عدد رو قوز گرفتید، اونید عادتون بوزور بگید برایش برنامه‌ریزی. درسته اون عدد نمی‌رسید. واقعاً نشد. به سمت پایانش برسید. داشت برنامه‌ای داشت برای این مرحله. آقای ابراهیمی من دینهوال نمیشم تا آوان و موهر رو بعد نمی فزئیاتون نمیشم. تا اون نمیشم اولش مربوط فقط نمودون میزان کل هزینه‌های های تم نمیشم و برنامه زمانبندی شو. خلاصو مدیریتی. آره که الان سالی 20 سی می توان درامت دارم که از این موضوع راضی نیستم برای بار بردان درامتانوی 60 میلیون توان در سال تحت هم رو برمان بزید. که باید برای اینکه به اینجا برسم اقاماتی که تارک کردم روز بوده که طبقات کمی داشتم فقط در حد آشنایان و کسانی که با هم همتای کار میکردم، کار میکردم ولی باید برمانه 20 می توان هزینه کنن تا برنامه زمان بندیه به صور تعیین کنم که این تاب، تق... این تابو تق... این هدف میشه میشه که سهم من از بازار به جای دو تا کار در سال به 6 تا کار در سال افزایش بخورد. به شش تا سودی سنتی رو بجنا واردات و من و مزارو به سازمان سودی سنتی بسته بود. پس این تابو کار به صورت نیازیه درون افزایش بده که. و نیاز به داشتن دستشکی متره در زمان دارن وان کی داشته باشم تا دو از نامزد شوی کارهای معتبرتر و حجم بزرگتری خرید کنند. افزایش فروش اینترنتی رو در پیش بگیرم و پیش فروش ملک رو هم در تبلیغات خودم بیارم. تبلیغات وسیله روزنا ای و اینترنتی که بالا بر اونها، الان مثربه کردم، حدود 20 س هزینه من رو خواهد داشت. در نتیجه با گرفتن 6 کار در سال به درمان سالین سر میتوانم نا شوم که با کسر 20 بلی هزینه های تبلیغات به اهداب خودم حتما میرسمعا. نمونه این آموط هم با هم چوبی آمود دیده فر که محدما گفتیم مقدمه توزیی خفثر صناای چوبی آمود با سابقه بودن بی ساره تی ق مصنوعات و چوبی از میز آره میزهای کامپیتر میزهای تلویزیون سرویس ها یک نفره و دو نفر را باشد. این شرکت در نظر داگاه بررسی مشکلات که داره فروش بالا برده و خود رو بین روغوا در هر بازاری شرکت آموت ورونی سرویس خواب دو نفره باشه. این هر بازوی ماکتی پلن چه دو نفر است. محصولی خدمات محصول این شرکت ایستازو نمی‌ست محصولی برای این محصول قابل بالاتر برنامه‌ریزی. با توجه به فناوری روز کنبای محصول از و تنوع محصول اثر رقبا به وجود آمدن این بازار سخت توزیع و از رعایت رقابت شرکت آموت کنل در با ته بازاریابی سرویس خواب دو نفره فروش خود را به بالاتر رساند. خب مقدمه بخش معرفی، نام نشانی شرکت قریبیان، آمود، نام مالکان نام خود نام مالکان، مدیریت شرکت، مدیریت داخلی نشانی شما تلفن چاردونگر، دیوان ایستاروم این تلفن تلفونشه اعلان مهرمان بودن بودارش نوارد مهتشور فقط باید توسط مدیران اشار شرکت بردسیش همه سطح دسترسی مارکتین پلند مشخص شده که این برای پرسنله این برای کارمنداست این برای مدیره این برای مدیران آماده کردیم بیشتر نازات بخوام این مارکتینگ پلن محصولی میشه پروداکت بیس نه اساس یک محصول شما نیست یک محصولی داری برای اون نیست درست حالا من در مورد میشه دیگه ما شما سازمان شما نه اشتراک شینی خاص داشته باشی ولی میشه محصول یه شینی خاصی بریم بخوای مثلا یکی ازش خرید بکنه اون میشه محصول یا خدمتی میشه اتا خدمت فاستران بود خلصا مدریتی <تصفيق> شرکت در حال حاضر در بین چهار رقیب خود در جایگاه های قرار داره. کلمها، و اگر شرکت بتونن که ادفه این ها این گروف، این کلمه ها، کلمه های مارکتن سهم و این کلمه ها و واژه ها باید کارتون باشه نواشه من اون کم بکنم واجه هایی که باید سهم بازار مارکت باشه عادت برشه چند درصد موجود بین اروپاای خودرو کسب کنن بین دو شرکت اول بود. بین چند تا شرکت چهار تا شرکت اول بشه این طرح بازار بین ما می‌کنن میتوان مشکلات پیش روی شرکت رو شناسایی کرده و اقدامات لازم از بنده خرید دستا حوالات طراحی مدل‌های جدید نوع و میزان تحقیقات و غیره را به شرکت در راستای پیشبرد اهدافش پیشنهاد نده این اهدافی که ما تو مارکتینگ بهتون گفتیم این اهدافت وجود داشته باشه شرکت باید فروش خود را، دنها این اعداد باید تو مانتنه توی بیس خلاصه مدریتتون باشه. فروش خود را، از چه رقمی به چه رقمی؟ در بین اون از چند تا به چند تا از ۱۴۴۰، تو موبلمان، ممارد عددی بررسی میکنم شرکت های تولید موب، کارشون عددیه، افتخارشون عددیه، مثلا در روز کارگاه من سی دست تولید میکنه، سی دست، به عدد به ریال نگ چون میشه کارشون سفارشی هست کنونی رو به 4000 عدد در سال های اندره برساند از 13 عدد به 30 عدد برساند این بعده مشخص خلاصه اجرایی آمین خلاصه ما میدید شکلت باید کل برنامه اجرایی رو طبعه برنامه زمان از ساراق 1-2-8 تا 3-4-8 این برنامه چند ماه هست برست؟ چهار ماه هست چهار ماه تا فروش خودرو 9680 از در سال عدد در سال چه ماه ماهایی 5 چه ماهیه چه فصلی از کار برای اینا تا خواب ایناست اوج کار این شرکت ها عملیات شبه عید بعد از عید اینا خوابن خب ماه، هر ماهتون هر چی خواسته عوض کنه عوض کرده هر چی خواست بخره خریده ما الان خوابش توی موقعی خوابش میاد دکتر یعنی اجرای آماده که چی چیکار کنم موقعی خوابم روش داشته باشم موقعی خواب کارم روش داشته باشم اصلا تو بیزنس ما مثلا ماه رمضان سفر خواب کارم نه ماه اون خواب کارم میکن. نزدیک ای همه خوب درمیارن ما اصلا من صبح شب خواب 3 تا هر کسی اوج تا تو اوجه کارش میاد تر میده ایده کل مید. تا فروش خود رو بینه کل هزینه اجرایه تر چقدر صدق هنجان ها میتونم کنید دقیق سعی کنید واقعا عددت میدونم صدق هنجان نمیشه صدق انجام نو میلیون یه دوستی به شما میگم از اعداد روند همیشه پرهیز کنید از روندشون شما دقیق نیست من نوشت. قیمت روند فریز کنید اگر روند فریز کنید از چه صوری که خیلی رونده اینا نشونه شما دقیق نیست 159 اگر شرکت رو هر تر... بازار فروش خود را به چهار هزار خالص برسونه ان سود سلفا میشه سود از این فروش می این میشه اینا هزینه ها رو کم میکنم سود خالص این میشه که حساب به سال 80 اینقدر ارزش خواهم داشت اگر با روغن وریا تعداد کیلو کیلی بوده امسال یه تان شده دیویس کیلو من افزایش تولید دارم اون دیویس کیلو من چه لغم میشه؟ یه لغم من هزار رو کم میکن این سودن میشه افزایش این خلاصه مدیریتی از تو باید خلاصه مدیریتی موشن لطفه اگه کارم کار بشه الان کیا با قرار همتی می بشن کن گروه بشن من خانم چون با هم دیم خانم منتی فرقصاده و آقای سلطانیم سلطانی از افتقار شرط که کمک انجام می شما باید آماده کنی یا نوزید می کنید A هست، من براستش A دیگه باقی ای ای، B و شهابالدین بین چنگورو میر هسته میگه کیا هستند ما بابا رضا هستم من صناوریه ده سی هستید کل رسای حسین رضایی هستین مه سی دیگه هاکیم امون که این بازیم چه یا؟ چه آزادت با ما از شما آقای کاملتون؟ من کازیم واست دونفر بیدم نه این یعنی هم با هم اینشون میده که شون نه هستنگی هم گروه شایی که هم نیست بشه خانم زنوزی با کی میتونه باشه؟ خانم زنوزی خودش یه گروه هست <تصفح> برای معلوماتشون <دلوقتي> زیاده آقای ابراهیم میتونه شما با هم باشی؟ شویخی میفرگ میشه آقای شیده نه خونه باشی؟ آقایت شما گروه ای هستی؟ گروه ای؟ بله خانم آقای ابراهیمی رو بفهمشون سراف همون فرافتادم بفتیم ما هم کازمین رو نبفتیم ما کازمین بفتیم باقی شما روی ای هست شما روی ای هستیم که که که مرسی از ما که میگیم آماده بکنی پایشمت یا آنترک کنی رو هم دیگه بشنیم با هم موروک های چک کنیم ایراداتون رو بر طرف بکنیم که ارس کامل و به هم ایمیل بکنید بکنی از هم به ایارات بگید اشکالاتتون بنظر کین، طرح واژه‌تون خوب، ناخوشایند و خالی از شوشه. طرح واژه‌تون شفاف، رو روشن و دقیق باشه. روشن و شفاف و اعداد روشن و دقیق. ببینیم همین طرحی خودمون رو دو کاملشو کنیم این دوباره. اینا رو داخلون فورب یادم میکنی. من نگاه کنم اینا میدم. میدم. رو گفتم میدم. دیویشو براتون میدم. آلبوم صورتون میدم. متناشو حس می‌کنید. رو می‌ذارید اونجا. ما فرمت کل هم، فرمت کالی مارکتینگ پلان تو کل دنیا همینه. انگلیسیشم هم سرچ کنین همینه. ما چون هم انگلیسی داریم، ترجیح میدم فارسی کدورای دی بی ما اینا رو انگلیسی تست میکنیم. اونجا همین فرمت. واخواشم متن رو بندهین، ما جایگزین میکنید. آخر این دوره میخوام شما استاد مارکتینگ پلان بشید. کسبهتون رو مارکتینگ پلان بگیرید، دیگه چی آماده؟ فرمتشو دارم. اطراتو بگیر، داکروش بزن، تعمیلش بده. خلاصه و اجرایی شفاف در روشن کلی داده ها بعد از روی شرکت شما آورده بشه از روی طایقات بازاری آورده بشه از هوا نمیتونیم بیاری درست ما فرض میذاریم ولی خب اون فرض اون کامل می کنیم برای اعداد عوض میکنیم ولی فرمت کلیش باید رعایت بشه درو طرح عملیاتی با تمام جزئیات مطرح میشه چند تا کار من تعداد پول یا اگر موردی بود تو ذمه ما میاری مثلا یه مارکتینگ پلن ده صف هست، زماییمش، پس 20 بیس صف هست اون زماییمون داخلش در واقع نمونه بود مهمترین اولاگه توی مارکتن چیه؟ رعایت ساده خونده شدم اصلا سادگی مارکتن پلند ردی خیلی عالی بود ساده، با قول خودمون روون آقا من اینم اینجوری میخوام این, این کارو بکنم ساده خونده توسط مخاطب، توسط کارمندای شما اصلا کارگر شما که اتنو بستگی به شرکتون داره مثلا شرکت داره آقای راوند سطحشون همون بالا همه با سواد همه تحصیف کرده همه با کلاس با ترجم اونجا نوشته بشه ساده خوندن تا حد امکان ساده باشه پیچیدهش باش خواهش نکنید نکنیم گنده و واجه های بزرگ و پیچه اونجا اقصاده خیلی روون ساده این این میخوام کار با انجامشه اجرایی به اما کپیس کردن نباشه، عملیتی باشه کسی تا مطبعی یه فهرست یه مقدمه داره، خلاصه اجرایی داره ترضیات، اهداف، برنامه زمان و خلاصه اجرایی اینجا هستش اهداف شرکت بخش اح... بخش اهداف اح... شرکت میرم از جمعون ترها شما نشون. مورد اهداف کران شرکت در این بخش لیست اهداف اصلی شرکت مروض برنامه آینده شرکت رو اعلاح شده اهداف اصلی و لانتر، غلند مدت که میخواد به چی برسید اهداف نکنید اهداف اینجا کمی و کیفی باید باشه اینجا جاییه که با شما اهداف کمی و کیفی رو با هم برید از ندارم این سوالی ای شما بزنون پاسه. ما بیزینس داریم خب یه مارکتین پلند داریم یه اف پلند حالا هم داری داریم برند پلان هم داریم من کار ندارم، پول ندارم. به صوری که بیزنس من این کلاس رو کاره، این باج و مالیاتیه. یه بخشی از یک کلاس کار باشه. این زیر مجمع اوناییه، زیر مجمع این مارکتینگ بلند زیر مجمع. ما رو حاکنا گفت، تایید اون می‌خوای از بانک وام بگیری. می‌گه بیزنس پلان برم بدارم. آ 200 میلیون، 200 میلیون از بانک وام خو اجازه در ریس صناییه جا بگیرید میگه بیزنس پلان بنویس این هر کسب کارت کلی کاملا کاره کل. این زیر مجموعه سلز پلانز زیر مجموعه مارکتینگ پلان داخل مارکتینگ پلان شما سلز پلان میارید ببین من میخوام سهم بازارمو 20 درصد افزایش بدم برای اینکه سهم بازار 20 درصد این کار فروش رو انجام ندادم برنامه خوش شما من دور میمونم فروش من با کیه اون میاد سیلز رو بهتون میگه که بعد برنامه فروش داشته باشی، بیشبینیه فروش داشته باشی چجوری این کار انجام بدی، چه فروشنده ای بگیدی، فروشنده هاتو چه تمام داشته باشه حقوق فروشنده هاتو پرسنتی باشه، سهمی باشه، حقوقی باشه، ثابت باشه اینا رو سیلز پلند موجه است ادتا تا زیم پلند چی؟ ترپی؟ زیر مجموع هست زیر مجموع هست سیل پیار بینید که راواتونی تکنیکای راواتونی، سیاره تبلیغات؟ ما بکر رویشش زیر مجموعی تبلیغات زیر مجموعی کنم که بینم؟ میتوند مارکتینگ مارکتینگ، مارکتینگ نفسی مزید برند–پلند چی؟ بیزینس برند پلند برند تبلیغات؟ برنامه برندیگ برند فروش کنگ برند بیزنس پلند برند پلان زیر مجموعه مارکتینگ هست. برند پلان زیر مجموعه بزنس پلان هست. پس شما می‌خواید طرح کسب و کارتون، که شما میخواید این کار کسب و کارو انجام بدید، چه برندی می‌خواید ثبت کنید، برای این چی بکنی. چی چی چی بسازی. چی برای برند می‌خواید چه کار بکنید، چهجوری برند بشید، چهجوری باید مشهور بشید، چهجوری باید بسازید، چهجوری باید برای این تیم برند پلن شما مثلا 60 ساله است. ببخشید تا بگید این دوفوه وار یعنی پنجمی با چهارمی می‌گی روابتون تقریبا هست. تبلایت راویتون هم چه پدازم؟ با راویتون چه پدازم درمونست؟ تبلیم شما راویتون تا بله؟ تبلیم با میکنیم کالای ولی راویتون میشه میتونیم ازشون اطلاعات کنیم پیشنهاد ازشون بگیرید با این تبلیغات رسانه داره رابطه این آدم داره این با رسانه ها سرکار داره، با آدم ها سرکار داره این با بیلبرد و روزنامه و ارزان LaneF شما بانره تبلیغاتی و پوستر و برشور و کاتلک سرکار داره خیلی رراحبتین ان آدم ها سرکار داره مهمونی، همایش، سمینار اینا شما با کیا سرکار داره؟ با آدم ها سرکار داره. فراولت اصلا فرصت فرصت شما چی سینی مارکتینگ نداریم بله اینا زیر من مارکتینگ هستن وسط بین پس انداز کردن و مدیریتی چونه باشه همیشه صاحب سرمایه کیه صاحب سرمایه صاحب سرمایه هست بهترین کس که میبینی میشه صاحب سرمایه چون الان مثلا 500 میلیون پول داریم میخوایم این 500 میلیون چیکار بکنیم بهترین کس که میتونه ریسا سوال فروش و بازاری فرقی مشاوره یعنی که نیازس مشتری رو اه... تشخیص بدید. و نسبت به اون چیزی که نیاز مشتری کالا تولید کنید، یعنی جوری باشه کالا یا خدمات که خودش خودش رو فروش برسوند اما فروش یعنی اینکه با اعداد ارقام دیگه بیشتر مثلا این ساعت ما مثلا ده میدیم فروش کردیم سالی دیگه وقت مثلا اونزم میدیم بیگه فروش میتونه افزایش سخت ما در بازار باشه فروش هم فروش بازیه فراشت مثلا این بازارگیاب بگیریم یا فروش استخدام میدونه بعد میری اونجا خب پا بازاریا تو باید برید تو مروازم اصلا این کار فروش رو خب میرشتی فروشنده اصلا بازاریا فروش, فروش میشه اصلا باجه باجه درست دیگه نتیجه بازاریاوی میشه نتیجه بازاریاوی میشه فروشی. دیگه یکی شب ساشه بازار چه من ما رو گیج میکنی ناسا ویزیتور فروشنده بازاریا سفارش گیرنده یه واژه‌ تازه شخصی از شما به کسانی که دارید مدرک ام دی باید اینو بدونید. می‌گفتم ببین، کسی که من شما میگم حالان شما مثلا مدیر بازاریوی شرکت استخدام میشید بعد طرف میگه گزارش رو بر من بیار این گزارش بیزاری که خود دستش خب چی بوده قضیه؟ اصلا طرف نبینه گزارش, فروش گزارش فرقی ما که فرق و فروش باید گزارش بازاریوی میدونه فرق اینها ما همگه نمیدونم همونطور که همونز فرق تبلیغات و روابطومی رو میگن واحد تبلیغات و روابطومی یا میگن مدیر فروش و اشتباه نمیدونم مدیر فروش و بازاریابی این بازاری بالاتر از اینه ولی اینه اولی از ملیابا پشکست نمیدم بعد شما گزارش رو میز مدیر اینه چه فروش پایینه من گزارش بازاریابی بددادم گزارش فروش بد ندادم اصلا این هم اشتباه میگیرن طرف اومده من میگه که آسفار من چهار زار تو چهار شرکت جا شدم می‌گم شرم می‌گهرچند منم مدیر بازاری هستم من گزارش ازتون می‌خوام عذرخواهی می‌کنم میخوان می آقا اشتباه می‌کنی این گزارش که هم گزارش فروشه گزارش بازه فروش فرم میکنه. این گزارش فروش فهم می‌کنه این واژه‌ها با هم فرق می‌کنه چون من با من چرا کس که, که, که MBA بی ای میشه در حد پی اچ دی بهش ارزش می‌دن می‌گن دکتر کشورهای اروپا اینجوریه دیگه کس که MBA بی ای واقعاً می‌گیره می‌گن دکتره دیگه شما دکترم صداش می‌کنن چون کاملا نبود مهارت نوشتن مهارت که این کارو انجام بده داره فرق سیستم ها هم شما مطرح میکشم کس نداره شما کالب بکنه وینا اینها همه فرق نه اینها شما باید با کاری که دارید شما اکساش بده کمپ پولش را بازاری که همه جانور است وینا این تاثیر خود یک فکر بزرگیه یک فکتی که خیلی بلنده حالا من بازاری یا مارکتینگ نگرانم اصطلاحشو چون خیلی کام مارکتینگ مارکتینگ و سلز هر دو تفکر خیلی بلند مدته از قبل از تولد ایجاد میشه یعنی شما قبل از اینکه حتی جنس تولید بشه شما برنامه مارکتینگ باید داشته باشید مارکتینگ از قبل از تولد از قبل از اختتام از قبل از چیزی که وجود داشته باشه حتی قبل از اینکه اصلا یه این موقعی وظیفه مارکتینگ من یا وظیفه آدم که داره مارکتیم میخونه اینه که تحریک نیاز بکنه نیاز آدم رو تحریک بکنه شما الان به سایت بایستر اصلا نیازی ندهد ولی یک کاری میکنه شما اگر سایت نقشته این کار مثلا یه چی تو کرد من یه روسی دارم فرانسی مقایی بیا تو خونم و توست قدیمی هستم سهر با شما همه خونه ما بده اومد خونه ما رو دیگه اومد بعد شد گفت چه غفت چما در میاری در ما با در مطلسه در آمادم این ما من فکر میکردم مثلا شما در خیلی بیشتره گفتم چطور گفت هنوز من الان پنج برارتو تو, تو براناسه در میارم همونز LCD ندارم تو چطور LCD داری؟ من هنوز سایت ندارم بس سایت داری؟ مم. پنج برابر من درم اگه ما چی ما من تحریک کردم نیازم بارم که که اصلا نداشته باشی میگاه آره. گناه وزار کردیم لحاظی ما ما یک ایران اروفا چند برابار ایرانه دو برابر ایران دو کشور ماست آه. اون حاظی اروفایی که منظور مونه مرکزیه ایران دو برابر اروپا مسرح لازم ما آرائش دارد بعد اونجا همه چیز لارژ، همه چیز عالی، همه چیز خوب ولی اینجا همه چیز دسته همه اجاب، همه همون همه،, همه چاگه، همه بساری چرا؟ چون مدت مسرح یه روژلت به مواقعه یه روژلت مدت به مسرحش توی ایران یک ماه تو اروپا یک سالا نیمه میزنه، خوش همه میزنه یکی دکی پتا بیم حالا مثال دارم نمونه میزنم، تحریک نیاز نیم مصرف، چون آبا نگاه کنید ما دو برابار میانگین جهان داریم و آب مصرف میکنم گاز ما یک کشور دو برابار میانگین کل جهان میانگین کل جهان، کل جهان مصرف آب داریم گاز کشور ما سه برابار ملکه داره گاز مصرف میکنم مصرف اونجا با, با, با ما همون سرماشو؟ هایر با همون سرماش، ما همون ما. کلا ما رو مصرفگیرها بارا بردن یه بازاریا اصلا یه کاری میکنه مثلا بالا بالا یه کاری میکنه توی حساسیت پیدا کنی که اگر اینا رو باشه اصلا بچه ها بسواد بردن زمون باز نمیکنه این رو تحریک میکنیم نیاز شما که شما, حتما شما حتما باید این چیزی که تبدیل میکردم کمرو تو دلگه راست میکردی برای آب کردنش میکردی بادی شیبر چی بود اسمش؟ بادی شیبر تن تاک تن تاک اسم جایی بشه یک کاری میکنه بازاگی ها تن تاک یک کاری میکنه که انگار هر خونه ای باید داشته باشه اگه نداشته باشیم اصلا تو کسر شنه برای تن تاک شداری؟ نه نه دارم این چیم نیاز میکنه. نیاز یک بازاگی رو تو همین زمینه بلن انسان مورد دون موره اینکه نیازشون ترمیم بشه دیگه یا اگه ترمیم نشه وقت قناعت بکن که مملکت ما بیشتر قناعت میکنه تا اینکه بخوام نیازها ما واقعش مستانی نمیشه نه مثلا مثال همین توی دیویسیش شما مثال ایران خودرو الان خودروش اصلا کیفیت نداره نسبت به اون کیفیتی که داره خودرو تولید میکنه قیمت برای فروشش خیلی بالاست. بعد مردم به جای اینکه اون منبع تامین کننده نیازشی رو عوض یعنی که از جای دیگه بگیرن یعنی از اون تولید کننده خرید تا کنن، میکنن و باز هم خرید میکنن. میخوام اینو بپرسم که چی کار باید ارزش که از قناعت <تصفيق> کردن نه قناعت کردن فهمش کنیم نه ما نیازه همون اشتباه تشکلیز بدیم ما نیازش دارم مثلا ناکن شما ماشین برای سوار شدن میخواهی میکریم هم که ماشین رو پوزدادن میخواهیم اینه مشکلون شما نیاز به به مردم انتقال میده مردم رو تلقیم میکنیم مثلا یه نیاز که حیاتیه نیاز که تو نیاز سانویت میرد نیاز حیاتیت مثلا مجالبه چند روش یکی از این ما من جاوجه شد و یک مستجر جاییز نمید ما هنوز بار توی کاملونه طرف همان کرده این ماهاره ماده بالا داره هست یعنی این برایش حیاتی اولویت داره تا اینکه بارش خالی کنه چیدمان میکنه اول اون، حالان تر ماشین داره ماهاره داره. لازم تفریش مستجره شما بیلا داره مثلا ما نیازمون همونو به ما تحریک میکنن انتقال دارم تشکیس نیازمون تحریک نیازمون بده ما رو واقعا بد بارو بعد بد مستقر کردن کتا دارم میانم بازاریاب هر آخوز که میپرسیدن بازار به تفکر لانگ ترمید تحریک نیاز کردن در آره مثلا شما از الان یه بازاریاب میخواد ده سال آینده جنس رو کنه از الان میاد برنامه ریزی کنه به مردم، احنایده رفتار مردم، بیانه مردم تا تغییر بده اون ده سال آینده که فرید کرد جنسش بلوت و بازار جنسش رو زمین نمارده از الان برای ده سال آینده کار میکنه از الان برای 20 سال آینده این مملکت برنامه داره از الان میگه که پنج سال آینده خانما دنبال چه مدی از الان باره تحریک میکنه مدارس، مدارست، دو, دو ها، تو کودک چه ورزشی ممکنه اینها پنج سال نیاز داشته باشند چی؟ پس الان کار میکنه دو ذهنشون پنج سال هرنده میکرم یاد میگه پس این فرق وازاری خط میدان خط هندس، فروش خط هندس، است بده جنس کی فروشنده خط میده بازاری ها؟ از این همه که برعکس، فروشنده است که به بازاری خطتن. خط میده بازاری ها به فروشنده میتونه این ماه باید 10 میلیون بفرشی ولی اینجا برعکس، فروشنده بازاری میگه من این ماه بیشتر از این نمیتونم بفروشم تو هر کاری بکنی بکنیم بخاطر یکی ما اینجا متد علمی نداره. خب دیگه نه بگیم هم مشکلونیم نگاتی که اینجا مثلا تو هر بقالی میریم یه بانگا امراک ملکی باز شده درصال که مثلا هم نمونه مثلا تو کانادا تو امریکا یکی که میخواد رایل اسلیت بره حتما باید بره دورهش رو بگذرونه تو کالجش رو و, و به عنوان یک فرد متخصص اونجا مدرک داره و مسئولیت کارش هم داره اینجا خب نداریم بکنیم شما بازاریاب استخدام میشه فروشنده بشه میگه تو بارو بازاریابی بکنم بیزون که هیچ متدی از بازاریابی بگیم با اجانم این میگیم ویزیتور رو میگیم این رو میگیم با اجانم همونجا بوجه همونجا من با گولی خوستشایی رسفت بود یه من چون یک کتاب تا تو انگاه هست دور کرد یک چند ماه یک بودیم ما پن هزار تا بانگاه دی این منکه داریم مثل صداقت <تص> اینقدر تو این سنعت دروح خالی مندی زیاده اسم صداقت و عدالت عدالت، نه صداقت خیلی زیاد بود مثلا تو عرضان خدمه هاشم رو تهران مذکر کنند هفصد، شیستر، تزار، شیستر، تا منگاه صداقت بود یا خیلی جالب بود، شغلا که نداشتن از بقال و چقال و معلم گرفته تا هر چی بگی توی اینا بوده گزشتشون چی بوده چون که هر بیزینس شما بگی اومده بودم تیم شاخر بونگام شده بود دانشجو بودم معلم بودم دکتر بودم بولیسانس بودم هر چی شما بگی یعنی من نگام کنم بیستشون شغلی نبود گذشته اینا چه شغل باشه الانش هم بونگام میتیم نه من را قبول پس یه واژه‌ی یه واژه‌ی خیلی لان خیلی بزرگ خیلی زیاد پروشه واژه‌ی عملیاتیه واژه‌ی اجراییه واژه‌ی که همون لحظه در کارش ادبیات نماهم فرقی میکنه. ادبیات فروشش خب خود ثابت نیست. پورسانته. وقت فروش شدن با میشه. فروش نداشته شما مشکل داره. نه انچ بالاست. فوق العاده. فروشنده اصلا با ثابت کار نمیکنه. اون ور اینجوریه. سخت برات نمیدونم این فروشنده میتونه از هزار تومان تا 20 میلیون تومان در بیاره. اینجا فروشنده یه ای خوند پورسانتی کار میکنه. مثلا دو میلیون تومان میگیره. نگید. هدفش را سنگیم کنید ماه برد بیشتر از این سخت بگیرید براش هدفش را کنید بگید ماه برد باید این موقع برد ولی اونجا این حرفانه از عدبیات بود چنین پرسانه؟ که تو شاکن هست مثلا مانتقه های هفته تیر خوب فهمیدن اونجا ماهی صد از آخر هفته تیر باشه کسی که فروشنده هفته تیر باشه بقیه در هر منطقی بفرشی، هر که به خوشیه پورسانتی هر مونتویی رو شکولا مای سر ازا خانم حساب کرد پیدام بغیش پورسانتی دیگه اونا خوب فهمیدن واسه شما هفته شما بورس شد اینجا اصلا نباید چه چه این سم فرمون اگه فروشنده رو پورسانتش دستش رو باز بذاری چون که وصول مبالغ دستش نیست بعد مقابلت خوشه اون نه پورشنده که از ازاش حسنه بن فروشانه مشی که تا می‌شه مطالبهات باشه فروشانه که کارش تمام میشه که پولش بگیره موقعی که پول بیاد صندوق در ما کارت شما اصلا فروش حضوری نداریم که کسی بیاد شما یک سال بیشتر زمان برای تا وصول باشه نه ما فروشی انجام میشه فروشنده فروش رو انجام میدم مثلا 100 کارت یک سال بیشتر وصولش شروع میشه وندوبه شرکتی داریم وصولش دو ساله بله. ولی فروشان فروشنده بعد از دو سال قرصان میاد واسه وصولش یه دفعه دیگه وصوله مطالبهاتش و اونجا ناخدا من شرکتی تو امارات فروشانت فروشانت فروشان فروشنده فروش انجام میده از پرسانت از 100 درصد قرصان در 10 درصدش در موقع فروشه واریز میشه به حسابش همون لحظه نه فقط آنلاین رو انجام میکنه ثبت میشه 10 در درصد قرصانش واریز میشه به حساب اس ام میشه براش که سد ۱۰ تمند به حسابت واریز شد پنجا درصد پرسانتش بعد از پاس شدن دوتا از چکایی اون مشتری واریز میشه پرسانت آخری که پنجا درصد، چل درصد واقعی پرسانت رو بودش بدشتیم بعد از دو سال که تصدیق کامل شد این فاز به فاز محل محل دو سال بعد، که قراروی اونجور دو سال است. دو سال بعد حصول کامل پرسان میاد توی سال بعد فروشنن نمون پرسانت نمی آنگر هر لحظه اسم باید اسمس ولی اینجا فروشنده و در در آنکرسان چی شد کجا؟ اینجا حسابدار سر ما حقوقش رو زیر زیره کلر منظم سر ما حقوقش میشه ولی فروشنده و و و منتظر میشه منت این رو اون رو بکشه به این بگه تا حال فروشام خیلی خوبه. پس فروش لحظه بازار بدی. تفاوت ما با خاطر که در متاجر اینو به جای همگی به کار نگیرید. ویزیتور چیکار است؟ بنید دو تا. ویزیتور برای ویزیتور برای معرفی و ویزیت ویزیتور خرید گرفتن و دادن انجام نمیده. پرزنت میکنه. پرزنت میکنه. پرزنت میکنه میگه شما نیاز دارید. بعد میره فروشنده ملک کارو تمام میکنه. ولی اینجا ویزیتور فروشنده است بازاری است. باید, ها باید ها. سفارش گیرنده هم هم پس سفارش گیرنده و ویزیتور با هم یکی هست تقریبا کاشیم ما اصلا مرچند هم داریم سنتره هم داریم اینجا که کنید بعدم سمپله سپارشگیرنده بازاری ها فروشنده بیزتار مرشنده ازر شاید نمونه شو بتونیم مثلا این کشور خارج را پشکتار بیدیم این خانوایی هستن میان جبه درم مثلا فروشگاه میرخسن عدا میارن شو میکنن محصول را نشون کنن اون ها مرشنده ازر حتی حرفه که اون رایی که تو نمیرم میچینده ازرسو ها مرشنده ازرسو ها مرشنده تا... چیزش میشه بازار پرداز بازار پنجوز سمت مدر بیره بیره بیره این چینه مورد تر میکنه مورد زن میکنه خودش یه رشته جداست نسبت ده. به ماملا. کسی که مغازتها رو نیم کاملا با هم تفکیب شده مشخصه. شده معین مشخص شده مشخصه. شده تخصصی شده کارا. اصلا ما هم مرچان ریزه بایی ماهی سمیره خصاصه شده خوبایی میکنه تو مرچان ریزر چه کاری کفتم سعی میکنه جنس خوب نمایش بده یعنی تو بسته من میتغیردن؟ تعدازش میکنه گرم میکنه میاد کسی شما مثلا صحبت میکنه صحبت میکنه، نگاه میکنه، بازی میکنه، ادا در میاره توی این رسطوران ها کسی که عروست میموشم اونجا میرخسن این ها مرچان ریزر. ما به نام این مرچان ریزر. یک جاذبه ایجاد شما داخل رستوران هم بکنیم این یک خصوصی هم انجام بده ما بد برداش میکنیم یا پوشونیم مسخره میکنیم اصلا شما رفته باشم توی امارات کانمای فروشگاه ها واقعا هده بگنم حالا ایرانی میرون او رو اشتباه میدیرن با مثلا هم نه، نه هرفیز ساگه هر برد سمپلر بیره مثلا داخل فروشگاه جنس ها رو میچینه مرتب میکنه تمیز میکنه سامپل نشون میده. با میسته همونجا اصلا موبایل باز میکنه به شما نمایش میده خب، ارزن خدمه شما که بخش بعدیه ماکتیم، من شما هدف هدفه کلان شرکت قایش می کنم این واژه ها رو حتما یادداشت داشت بکنیم یاد تاکر این واژه ها باید تا هدف شدیقتون باشه حفظ و توسعه یه سهم بازار باقت کنیم حفظ و توسعه نه اینکه فقط توسعه داشت حفظ سهم بازار رو چقدر؟ اول شما جرعت حفظ رو داشته باراش توسعهش بیش کشت شما هنو مشتریتون میتونیم حفظ بکنیم من بگم من چیکار کنم توسه بدا کنم من که این وقتی در شرکت اومده بگم چیکار کنم مشتاری هم زیاد کشم بگم تو فرحا مشتاری قدمی تو حفظ بکن جدیدی ها بیشکش بش... حفظ توسه بازار حفظایش سم بازار افزایش سادرات مدام بگیدم هدف با حفظایش رضایت مشکل حفظایش هر سهم یا حفظیم محیط زیست مثاله مثاله که برای احبابی کلانه احباب کلانه میخوام واقعا با این کاری که انجامم خدمت به جامعه و خدمت به لنگی کرده آسان اینا همیشه هست میتونه باشه دیگه تو همه این مارکهتی بله امسان هم نه هست از سران اینا هست دیگه یا اسفشوی کلیش مثلا اس در کلاس در کلاس جهان توسعه اطاله های استراتیجیک در صنمگدری با رهنران جامعه بازار خودرو توانا برای رقابت کنندگان جدید در منطقه با طرح های خودروی مخصوص می کنند مناسبتن فراهم سازی صنعت خودرو در ماده برای وصث ثمره روزای مورد استاندار برای صدور ثمن به کشور ترکیه یک، برای فرد و تروایی پدرس، ساخت گروش و قدرهای سواهی چاسه من درستیش پارس هستن خواهی این که رب هم شما اعدافی کردن چون نها دایی اعداف کهران شرکت باید دراسته اعداف جوزی محصول باشه نهیم که یه تر در... چیزی برای خواهی بیاری بینیمسه باید دراسته هم فاضگی نمی می وارد بشید فاضدی گ خص گواام ایزو نه برای کارخانه موت سازی. نه، اعاب مصات آتی، تول 20۰هزار دست تا سرران در سال۸.طر قطاد سرعلی در استانداد ها رزامیک جهانی. اعاب کل مصلات آتی ایننا رو توشا مییم. اینجا ما برم عکنم برای نامور بیایم در این برش مور رو قیانی معمولیت احلاف کلان ها شایی که باید متناسب می دهند بعد این احلاف کلان ها باید اینجوری اگه ساده می خواهد اینجوری مسال نا کنید مثلا من یک از احلاف کلان هم اینه من به هیچ شرکت و سالتان محسسه که ضد مونیکزیست باشه ضد سلامت جامعه باشه بهش مشابه نمی دم مثلا توقعیش یکی از وارد کننده های بزرگ ستیکار اومد پیشه ما با خیلی خوب رقم اینکه مثلا زندگی من میخویز متعول بکنم قبول نکردم خودم من رازش کنم شما دارم سیگار من نمیتونم وارد باشم مرام کارم نه، هدفم نه یا مثلا مثلا من به شرکت کفک نمکی نه حالا مشاوره دادم نه حاضرم باشون کار کنم یا مثلا برای شرکت سوزی کارباز اینا رو بهتو میگم خود چه خود اون باشه من برای خودم دارم هرکس خود هدف کلام دارم <متنجا> یه بار من هفت، هشت، نه ساله بیش برای سال هشت سال دسه چند سال پیش میشه؟ <التجا> ده ساله <سلام. دهست. التجا> یه شکلت سوست کار باز کردم، دیدم روزیدم، گذاشتمش من ولی کسی که اصلا تو این کار می کنواد، بازارش توسه بده، نمی خواهم کار بکنم. چون دیدم خودم دیدم من سال با کنم چون این دیدم اصلا، خودم دیگه از اونه رو اصلا، حالم نه شاید من نه سال سوست نخوادم، با آرکن برای خودم دارم، چیزی که ضد زیست باشه مثلا اگه من برای خوراک دام و طیور این شرکت کار می‌کردیم یه سری دونایه کود یه سری کود از چین آورده بود کاهو دیدید کهاتی دید. توی دید مزرعه کاهو کاهویی که تازه جوان زده این کودو پخش میکرد سه روز کاهو شدنمید. بنابراین سه روز بود رفتم کاهویی که تازه جوان زده بود با کونزر روز بیس روزی کاغا باید اعتبار رو بگیرید که سه روز کاغا شدن گفتن خدافر شما هم کارم کود هرمونی بود الان دکار میرن و وجود دارد این اهداف کلان رو شما مینویسیم مرامت، معرفت به ته خودت نمازم آره. با هرکسی نمازم کنید مارکت این پیلند این نیست که شما با هرکسی کار کنی. مارکتینگ این اینه که من با شرط بیجه خودم کار بکنی من انسانیت رو در نظر می گیرم اخلاقیات رو در نظر می گیرم حاضر نیستم برای هر کاری هر کاری انجام بدم. حاضر نیستم برای گرفتن هر کاری هر کاری انجام بدم نه همچ چیزی تو وجود من نیست ساده. شفاف سال اهلاف کلاب من میخوام برای جامع برای بچه هم. برای آینده این اعداکن که 10 ساله باشه نگاه کنید. مثلا من میرمیه مدیری من که من که آ دو۱ سال من یه تحت بده. میگم باش برای پونزن سال رو تهر میرم برای چه میرم کشه یه میگه برای دیویست سال من تهر بده میگم میکنم تو برای ایتان نماید سال زنده زندگی برای 20 سال میخواد چیکار بکنی؟ ما چیکار داری؟ من میکنم برای دیویست سال داره من داشته باشم. میگم این فکرش بزرگه تو همهدان، موقع که قاطرها قاطر بودم از ماشین نبوده یه میلون ساختم هنوز که هنگه ترافیک نمیشه چقدر ذهن اونا بزرگ بوده ولی الان تو این حکومت کنار اوتوان غم اوم تهران اومدن مترو زدن چسبیده <تصفيق> به اتوبان پیش خودم میگن یعنی ترک باسته نه فردا اگر مثلا اوتوان غم تهران مثل اوتوان کرج خواست پنجبانده بشه شروخ شد ترافیشه خواستم پنجباندهش بکنن با چیکار میکنم بکنم؟ انگه فکرها کوچیکه. میدون میم دوباره ب بزرگ فکر بزرگ. هدف, بزرگ هدف بزرگ هدف برای بچه ها چرا قنادی آقای رویی نباید طوری باشه که سهامی باشه، باشهشون از دنیا رفت ببخشید شما 100 تاش بچه هاشم رفتن، ولی قرنش اسم داشته باشه برند داشته باشه مثال میگن سهها باشه مثلا تا ۲۵ سال تا سیصد سالیم ما هم همش نگگاه کنیمیم به زندگی بودیم بعد اینکه من از دنیا رفتم می ب بره فدای این ماندنی بودن خیلی بودن. این اهداف kimia این با اینجا دیده بشه بعد کارای شما متناسب با اهدافتون باشه حفزش فروش شما به ح قیمتی نه به هر شرایطی نه من که من خودمو برم بفروشم برای اینکه به هدفم برسم نه هویت خودم زیر سوال ببرم به بر هدفم برسم نه بعد بر اساسا سیاست کندی که دارم باعث که دارم با اون با ترجمه از خنده شرکت بزرگ قدیمی در کنار اساسنامه شون مرامنامه دارن مرامنامه الان دیگه مسئول نیستش ولی خیلی مرامنامه مرامنامه دارن مسئولیت اهداف و چرای شرکت مربوط به باشه سال تا شرکت مرامنامه توی این قانونا فقط بند روشی ها نشین با هر کسی با هر شرایطی کار میکنه من خیلی مورد رو دیدم نباشه موضوع بازاران شکلت یک خانمه بود یک فروش سه میلیاردی انجام بدارید بعد یک سال گندشتر من که به خاطیم تو فروش انجام بده یک سال داشته تنفروشی میکرد من حاضر نیستم برای مامره هم با اخلاقم، هر کاری بخواهم انجام بدم. یا زرری به کسی بزنم چون این به زندگی خود این بعضی ها سلوتاً نمک برکت برشون نداره با هم وجود داره الان تصویبان تو کنون تهرم خودمون بسید شرطت های بزرگ هستند که برای گرفتن پروژه خب نمایندگانی بیشترم خانم هستن. نمایندگانی میفرستند برای افراد که اون فرد هر کاری برایش مجازه که فقط اون پروژه اینچه میداریم تو این چند ماه اخیر دو سه مورد اصلا برای ما پیش اومد تو این خانم هی میاد زن میزنه حتی حاضر این من رستولام یا من کجا بعد هم یکی دیگه با منم این کار کرد با منم اطلاعیم به هر قیمتی فقط فروژه میخوان بگیرم میگیرم بعد میمونم داخلش میمونم حالا بعد یه اتفاقی بیافته خدا میمونید. چون همون آدم که میره دیگه فروششون قطع میشه برنده خودم مشاهده رو جلسه رو مدی فروش گفت که شما امسا رو میبیار که بدی باید توسن خوشحال خوشکارشون مادر فروش رفت بیمه ایش گفت هم خواهد تو هر اشتباه کرد. گفت این به خاطر میره هر کاری میکنه بعد آسیب گفت نه هم خیاله فرام باشه شیش مانه زنده گفت این آقا رفته فروخته بره جنس رو بره به هم میگیرم محجوب میشه بستواندی به هم شده؟ اون توسان همش دادی یعنی بااله میگم کل منشون سه ماهی این کارو کردم توسان روش کردم خودم از این کاری به خاطر توسان هر کاری کردم جنس کم دوستون داخل فروشگاه و ارسال با هر محصولی با هر مانتی با هر ماشینی کالا فرستاد رو فرستادم به خاطر این روی رقم به هر شرایطی با نه این که. اینجا میاد این احطاب کرده من قبط اونجا رو در شما قید میکنید چون هر توسعه بس. کار شما مناسب با احطاب کرده انتون باید باشید من هر کاریم نواهید بخواهید احطاب کرده انجام بدم نواهید به دیگران ضرر بزنم برای اینکه بخواهیم اون کار رو انجام بدن برو رو احطاب شرکت این مال آموده نگاه کنید تبدیل شرکت به برند برکتر به این روحبان اصلا سموا رو 50 تا دریم رقابت تا 5 سال آینده یادم مرونم اصلا این سم اونجا مرانمونو میارن نوشته میشه هست آخه وقتی فیلم میخورن میفهمن که واقعا میتونن کار کنیم خواستن بخورن فقطتل کار کاسه هر کاری میخوان انجام بدیم به حین سموا رو افسایش بدیم حالا نیست رو رو زیر پا بگیرید بدنام بکنیم. اصلا نهوره داشتم یه آجیل خروشه خیلی من را با برنده بر خودش بگفت برای این دیگه بار که مشتری هم می این داخل را مرچه هست مرچه هم تا حالا رو ما نمونه نداشتیم؟ بگفت را نگاه کردیم، چک کردیم؟ لطفا که یه که خانه یه با چادر اومد داخل آجیل برداشتیم، این پول می‌کشدارش چی؟ ما یه بار میگم آقا بچه‌ها بودن حواسشون چند پای. دو سر اترن به شیش ای رو برداشت. داره خالی می کنه تا عاجیلا. شیشه رو مرخصه. انگیزاش şimdi گفت ساری گریدون ساده را زنگ دارین این و اون پس یه موقع هم آره دیدی آسر به کزواقا که تو اون محله هست عجیر شده. فرو خوبی هم گرفته. اومدای کارجو. ما فروشگاه انتری داشتم موش مشکل کردم اونجا. کاسب <تصفح> منطقه که هایپر ما رفتیم افتا کردیم در ما هایلنه بگیم کارمنده داد بگیم بود و بگیم این مشتری خود همه جا بسته همه جا ز... کجا میدونیم بله نه که هایپر اونجا زده شده مغازه های کچیک اونجا ما را هچنا شاکی شدن کاسبشون به هم بیخته با هم جمع شدن یکی رو عجیب کردم یاد داخل فروشگاه کیفی هستش پرموشه یورمزره بو شی اونجا این مشاوره کن داخل این پوشک حاضر هستن برای اینکه کارمون رو هر کاری انجام بدن هر اتفاقی بیفته بازیزنی میشه که... دیگه آره دیگه می‌خواد لب سلام طلعت دیست احداقش اگر توی دیست احداقش بازار و جمعی اطلاعات بازار باشه اینچون زمان برای من گیم برای هفته آینده شما انجام بگیم چون تو احداق شرکتتون باید یه مقدار اعداد دقیق تر بیاد باید اعداد دقیق با تعداد و جدا باید خلش باشید این مادیران دارم من وقتا دارم این محجبه هم یه جاهی رو از جوی این پازی دارم بادش کردیم که بله. من این محجبه بخار سگیدی؟ بله، این مادیران دارم سبسان ببخشی، پس این مارکتین که شما میگین کلیت بازاریابی و بازارسازی و همه ای اینا شاملش میشه دیگه ها. این فقط مخصوص بازاریاوی نیست کانه مارکتی نیست آسان واجه بازاریاوی هم که استفاده می کنیم یعنی منظور همون بازارسازی داده. و چیزایی بگم هست بجا افتاده چون بجا افتاده مجیری به کار مجیر بیدیم مجیری به کاریم حتی تو کلانش رکل کرد که ایزوها رو میگید چون ما می کنند به کجا می خواهم برسم چی دارم کجا ما صادرات رو کنم مرامامت بعد رسیم کزی تعلیل وضعیت بعد از وقت کلام برسید کزی وضعیت که همارا افشان رو هم بکنم رو به سر بکنید بزارید خب این ما که گفتیم باید یه جوری باشه برنامه که همه متوجه بشن. انتاف کلان. بستگی به کسایی هم داره که دارن میخوانن دیگه اون برنامه رو. اگه یه چیز تخصصی باشه خب باید در هر حال با اون زبون تخصصی نوشته بشه. شرکت بازرگانی خارجی. نعمت هاشمی هست. شرکت کارگرایی هستن که سفارش س. این قرارداد این اسم خامانه شانس بالای 20% هاشون برای این قرارداد